اسل ششم روزها و هفتهها و ها گذشت و پدرم کوچکترین کوششی برای دیدن ما نکرد حتی یک تلفن هم نزد پدر ما آدم لجوجی است شاید هم من و سیدنی لجاجت خود را از او برده ایم علاوه بر این بسیار تلخ کام بود آنقدر که ظاهراً علاقی به دیدن ما نداشت خانواده مادرم هم سخت آزرده شده بود و آنان نیز کینه به دل گرفته بودند. آنها توجهی به این نداشتند که ما پدرمان را ببینیم یا نبینیم. فقط مادر بزرگ کوری مستثناب بود. او احساس میکرد که هرچه هم بین بزرگترها پیش آمده باشد، نباید ما را از حق دیدن پدرمان محروم کرد. او امیدوار بود که پدرم تلفن کند و بخواهد از حق دیدن کودکان که دادگاه به او داده بود استفاده کند. من درست نمیدانم دانم که آیا پدرم در آن روزها اصلا به فکر ما بوده است یا نه. او سخت در کار اتمام فیلم سیرک بود که به علت اشکالات شخصی خیلی طول کشیده و به تعویق افتاده بود. و من شک دارم که در آن روزها فکر دیگری هم داشته بوده باشد. در اواخر سال کار روی فیلم سیرک تمام شد و در جانویه 1928 به نمایش گذاشته شد. در آمد این فیلم بسیار خوب بود و به خاطر آن جایزه مخصوص آکادمی سال 1927-28 به پدرم داده شد. در حکم جایزه نوشته شده است به خاطر نبوغ همه جانوهش در نوشتن، بازی کردن، کارگردانی و تهیه فیلم سیرک. وقتی من و سیدنی بزرگتر شدیم، پدرم درباره بردن آن جایزه اسکار برای ما تعریف می, کرد. می گفت که حتی در مهمانی آن که برای اولین بار ترتیب داده شده بود و در ششم مه 1929 در هتل روزولت هالیوود برگزار شد، شرکت نکرد. و آنها ناچار شدند اسکار را برایش بفرستند. پدرم می گفت عقیده دارد که سر و سازمان جوایز آکادمی احمقانه است. او می گفت به نظر من تصمیم گروه کوچکی بر اینکه من بهترین فیلم را تهیه کردم افتخاری ندارد. من به تحسین مردم احتیاج دارم. اگر آنها کار مرا دوست داشته باشند این جایزه برای من کافی است. او می گفت که در آن آن آنقدر به جایزه اسخارش کم ارزش میداد که آن را برای جلوگیری از بسته شدن جلوی در اتاق می گذاشته است. اما تا آنجا که من به یاد دارم، او همیشه این جایزه را در تاختی بلندی کنار مجسمی نیمتنی خودش و چند مجسمه با ارزش دیگر میگذارد. حتی حالا هم که در سویست زندگی می کند، همیشه این جایزه را در جای نمایانی می گذارد. از این رو می کنم با گذشت سالها، نظر او در جایزه آکادمی تغییر کرده باشد. کمی بعد از اتمام کار سیرک، پدرم غرق در نوشتن اسطناریای روشنائی های شهر شد. اما در آستانه تهیه آن، بحران عظیمی صنعت فیلمبرداری را فرار گرفت. سال 1928 برای هالیوود سالی تاریخی بود. فیلم ناطق از مرحله تجربه گذشته بود و به صورت یک واقعیت تجارتی خودنمایی می کرد. تهیه کارندگان ناچار بودند تجهیزات جدید فراهم آورند فنون کهنه را به دور بریزند و در داستانهای خود علاوه بر آنتریک و صحنه آرایی، مکالمه بگذارند و هنرپیشگانی با صدای خوب برای شرکت در این فیلم ها پیدا کنند این برای بسیاری از ستارگان محبوب دوران افول بود در حالی که هنرپیشگان گمنامی که صدای خوب داشتند به سرعت کردند بابا صدای خوبی داشت و در روی صحن نمایش هم برای بازی و هم برای خواندن از آن استفاده کرده بود. اما اطمینان نداشت که صدایش روی پردی سینما چه از آب در بیاید. او به ارزش هنری وسیله جدید یعنی سینمای ناطق عقیده نداشت و احساس میکرد که این وسیله رالیسم زیاده از حدی به جهان هنر نمای سینمایی می آورد او تای فیلم را کنار گذاشت تا دوباره به مسائل جدید بیاندیشد و آنها را حل و فصل کند فقط تهیه کنندگان دیگر میتوانند بگویند که او در آن دوران تردید چه ها داشت نگرانی عمده او آن بود که تیپ ولگرد کوچاک که وی به وسیله آن بسیاری از احساسات درونی خود را بیان کرده بود و اساس آن بر پانتامین بود در سینمای ناطق خراب و نابود شود گویی در آن بهار و تابستان طولانی وی بر مرگ خیشاوندی عزیز و تخیلی یعنی شخصیت باطن خودش میاندیشید. در آن سال دو مرگ واقعی در خانواده ما روی داد. جد در دوم آوریل مرد و مادر بزرگم چابلین در 28 اوت در حالی که پدرم بر بالینش بود فوت کرد. دوستانش میگویند که مرگ مادر او را هفته ها در حالتی مالی خولیایی انداخته بود در همین مواقع بود که او تصمیم گرفت فیلم روشنایی های شهر باید فیلم سامت باشد من می که او برای عده توضیح داده است که این تصمیم صرفا دلیل تجارتی دارد ولگرد کوچک با زبان همه فهم پانتومیم در سراسر جهان محبوبیت داشت و محدود کردن این تیپ به زبان انگلیسی بازار فیلم های او را محدود خواهد کرد اما من که پدرم را میشناسم شناسم می که تصمیم او علتی امیختر دارد. او نمیتوانست توانست می کند که ممکن بود باعث نابودی ولگرد کوچک شود. تهیه روشناییهای شهر در واقع به منزله عقب انداختن حکم اعدام ولگرد کوچک بود. من فقط میتوانم حدس بزنم که این تصمیم از لحاظ احساسات او به چه قیمتی برایش تمام شد. دو شب و روز افراد را به کاروا می داشت، هزاران متر فیلم برداری می کرد و بیشتر آن را دور می ریخت. او خود همراه دیگران کار می کرد و نه به فکر سلامتی خودش بود و نه به فکر سلامتی دیگران. او چنان تحلیل رفته بود که در بهار سال 1929 یک مسمومیت غذایی سبب شد که اختلال رودعی و سپس زاتوریه بگیرد. ناچار شد یکی دو هفته استودیو را ببندد، تا سلامتی خود را بازیابد. در همان بهار و بعد از بهبودی پدرم بود که جده همکوری تصمیم گرفت رشته امور را به دست خود بگیرد. نانا و مادرم به مسافرت رفته بودند و دیگر کسی نبود که در کار او مداخله کند. یک روز تقریبا دو سال بعد از طلاق گوشی تلفن را برداشت و از پدرم پرسید که آیا نمیخواهد ما بچه ها را ببیند؟ پدرم در پاسخ لحظه تردید کرد. به مادر بزرگم گفت که فوراً ما را پیش او ببرد. از دیدن ما دچار حیرت شد. ما دیگر کودک آن معمای جافدان برای او نبودیم. پسر بچه های سه چهار ساله بودیم که آزادن راه می رفتیم و حرف می آن هم نه فقط به زبان انگلیسی بلکه به زبان اسپانیایی هم سخن می گفتیم. بزرگم برای آنکه زبان مادری او را فراموش نکنیم، یک پرستار اسپانیایی تمام وقت برای ما استخدام کرده بود. بابا که خودش فقط چند کلمه اسپانیایی بلد بود، از شنیدن اینکه ما خوب اسپانیایی حرف میزنیم، حیرت زده شده بود. اولین دیدار ما، یخ قهر را شکست. بعد از آن اغلب، بابا به مادر بزرگ تلفن می کرد و به او می گفت که می خواهد ما را بردارد و با خود به استودیا ببرد. از نشان دادن ما به دیگران لذت می برد. از داشتن ما به خود می بالید. من می دانم که احساس بابا چیزی بالاتر از قرور را بالیدن بود. من و استیدنی یک جای خالی را در زندگی او پر می کردیم. پدرم آنقدر خدا راست را که اغلب مشکل است اندیشه و احساس او را فهمید. اما گاهی با های احساساتی خود را لو میدهد. مثلا در این مورد عکس من و سیدنی را همیشه روی پیانوی اتاق خود داشت. وقتی من و سیدنی بزرگتر شدیم دلمان میخواست که پدرم آن ها را با اکسهای تازه ترمان عوض کند. زیرا همیشه می‌گفتند ما شکل دخترهای کوچولو هستیم. اما... بابا لچ میکرد و اقصا را عوض نمیکرد. وقتی که نانا و مادرم از سفر برگشتن، روابط بین ما و بابا محکم شده بود. حالا دیگر نانا وظیفه بردن ما را به نزد پدرم به عهده داشت یا ما را حاضر و آماده میکرد تا هر وقت بابا میخواست بیاید و ما را ببرد. وقتی نانا ما را به نزد پدرمان میآورد هرگز خودش داخل نمیشد و به دیدن اون نمیرفت. هنوز دیوار جدایی بین آنان بود علاوه بر این نانا اندکی هم از پدرم میترسید در گذشته در هنگام شدت خشم پدرم گاهی تهدیدهای مبهم وری شدیدی کرده بود یا لو به نظر نانا که اندکی مرعوب بود چونین مینمود. او ما را با مستخدمی میدم در میگذاشت و خودش یا منتظر میماند یا می رفت و برمیگشت اما یک روز بعد از آنکه نانا ما را به مستخدمین سپرد، ما دوان دوان و موپریشان و نفستنان برگشتیم و با هیجان گفتیم: نانا، نانا، بابا می‌خواهد شما را ببیند. گفت که بیایید تو. نانا آهسته از اتومبیل بیرون آمد و در حالی که ما دو تا به دو دستش آویخته بودیم، وارد خانه شد. مدتها از آخرین باری که وارد این خانه شده بود، گذشته بود. پدرم اندکی گرفته ولی مهربان در دهلیز خانه منتظر او بود. پدرم دستش را دراز کرد. نانا با او دست داد. پدرم گفت میخواستم به شما بگویم بچه های بسیار خوبی هستند. شما آنها را با این رفتار شایسته بار آوردید. من از داشتن آنها خوش وقتم. بعد از آن هر وقت ما به دیدن بابا می رفتیم، نانا هم با ما به داخل خانه می آمد. وقندک عقب میستاد و من و سیدنی به طرف پدرم میرویدیم و او را میگوسیدیم بابا از بوسه های ما خجالت میکشید شرم داشت قبول کند که از این بوسه ها خوشش میآید اما ما میفهمیدیم که خیلی خوش دارد او را ببوسیم بابا عاشق مهربانی است ولی خودش از ابراز مهر خودداری میکند من و سیدنی همیشه رومان بازتر است حتی حالا که بزرگ ایم، هر وقت پدرمان را میبینیم او را می‌بوسیم. عکس‌العمل او هنوز هم حاکی از ناراحتی اما لذت است. او خجولانه ما را میبوسد یا با دست به پشتمان میزند. توری نکشید که پدرم و نانا هم درست مثل موقعی که مادر زن و داماد بودند همدیگر را بوسیدند. من و سیدنی به زودی فهمیدیم که پدرمان با همه پدرهایی که تا کنون دیده ایم فرق دارد. هیچکس کس چون این پدر خوشمزهی ندارد. در تمام مدتی که با او بودیم ما را میخندند. بعدها فهمیدیم که برای او مهم نیست که تعداد زیادی تماشاچی دارد یا فقط دو بچه کوچک تماشاچی او هستند. اگر او حال سرگرم کردن داشت و شنونده هم خوش برخورد بود، هر کاری میکرد که او را بخنداند او حرکات ورگرد کوچک را برای ما اجرا کرد آن حرکات ناشیانه را با چنان لطفی برای ما اجرا میکرد که گفتی به دیدن بالت رفته ایم هر وقت سر حال بود به ما میگفت شما راه رفتن جوجه ها را دیده اید. بعد در اطراف میخرامید بالها را به هن میزد و صدا میکرد این نقشی بود که او در فیلم جویندگان تلا در حالی که کاملا از لحاظ سر و بالا پا به شکل جوجه در بود ایفا کرده بود. اما در واقع به آن پوشش مخصوص جوجه احتیاجی نداشت. بدون آن هم حرکات او شبیه حقیقت بود. ما در استودیوی پدرمان سرزمینی دیدیم که صحنه‌هایش به راستی احساس حقیقی بودن در آدم میکرد. در اتاق آرایشش جوری چشم ما به صورت ویلگرد کوچک در می آمد. اول یک قطعه پارچه موی بزرگ بر می داشت و موهای آن را در می آورد. آنها را می بارید و می تابید تا به اندازه که سبیل واقعی در آید. بعد آن را به صورت می گذاشت و به طرف ما برمیگشت و لبخندی می زد. از ما می پرسید؟ خب، حالا در پدرتان چه فکر می کنید؟ بعد صورت خود را پیچ و تاب می داد و هزاران شکلک در می آورد. بعد یک شلوار گشاد می پوشید و کفش بزرگ به پا می کرد. چند دور دور اتاق می چرخید و با آن کفش های مزهک لخ لخ می کرد. ما در آن موقع نمی فهمیدیم که کم کم دارد به صورت ولگرد کوچک در می آید. مجذوب می نشستیم و به حرف های او گوش می دادیم. بعد ادامه میداد؟ البته شما میدانید که این مرد کوچولو چرا باید نووی کفشهایش را به خارج بگذارد و راه برود. برای اینکه کفشهایش خیلی درازند و اگر بخواهد عادی راه برود نمیتواند زانوهایش را بلند کرده و راه برود. کفشهایش لای پایش میپیچد و به زمین میخورد؟ پس بچه ها ما باید اینطور راه برویم. بابا در حالی که این حرفها را میزد شانههایش را به درون کت تنگ خود میکرد. کلاه کوچک خود را نوک سرش می‌چپان و اسایش را می گردند. سیدنی و من جوری خنده خودمان را نمی توانستیم بگیریم. با هر قه خنده ما، ویلگرد کوچک، شانههایش را شادمانه بالا می و بالاخره کاملا به قالب خود در می آمد. روی هم رفته در لباس ولگرد کوچک چیز دیگری به نظر می رسید. خودداریش کمتر و اطمینانش بیشتر میشد. مثل ما بچه ها میشد: موقع فیلمبرداری هم پدرمان به نظر ما بسیار جالب و جاذت می‌آمد. وقتی دوربین به صدا در می‌آمد و نور افکن نور میانداخت، او جاوی جمعی دیگر به ایفای نقش خود می پرداخت. او خوشمزه بود و اشخاصی که دور دوربین فیلمبرداری بودند به خنده میافتادند. من و سیدنی همیشه میخندیدیم وقتی مردم میخندیدند چونین مینه بود که او تکانی شوخ در به سر خود میدهد. چشمانش میدرخشید و معلوم بود که لذت میبرد. این کار پدر ما بود. به نظر میآمد که او برای من و سیدنی بازی میکند. مردم می‌گفتند او بازی می‌کند و بازیگر است چون ما هنوز به سنی نرسیده بودیم که به سینما برویم و فیلم تماشا کنیم هرگز نمی‌فهمیدیم که چرا پدر ما سراسر روز را جلو دوربین این کارها را می کند. ولی می‌دانستیم که او به جهتی آدم مهمی است هر وقت همراه او بیرون می‌آمدیم این احساس را می‌کردیم یکی از سرگرمی های سادگ پدر ما قدم زدن در بولوار هالیوود بود گاهی ما را هم همراه خود می برد. ما راه میرفتیم خستگی در میکردیم مغازه و اشخاص را تماشا میکردیم. پدرم علاقه داشت قیافه اشخاص و طرز راه رفتن آنها را در موقع گردش تماشا کند. گاهی برای اینکه او را شناسند عینک تیره ای میزد. اما حتی در این مواقع هم پس از مدت کوتاهی شناخته میشد یک نفر میگفت چاپلین، چارلی چاپلین و پسرهایش و فوری جمعیت دور ما جمع میشدند و مردم دفاتر امضای خود را برای امضا سوی پدرم دراز میکردند پدرم بر حسب وظیفه بعضی از دفترها را امضا میکرد و بقیه را با دست پس میزد و میگفت حالا خستم و میخواهم به خانه بروم لطفا آنها را به استودیو بفرستید. بعد دست ما را میگرفت و به سرعت به جایی که اتومبیل در انتظار انتظارمان بود می برد. او نیمه خندان در حالی که معلوم بود از گردش اصر لذت برده است و میگفت: «می, می بینید بچه ها؟ من آدمی هستم واقعا خیلی مهم. او مهم بود و بازدیگر بود و هرچه بود من و سیدنی او را دوست داشتیم. ما این پدر عجیب را که چنین اتوار ای داشت دوست می‌داشتیم. دلمان می‌خواست با او باشیم. اما گاه مدت‌های طولانی او تلفن نمی‌کرد و سراغ ما نمی‌آمد. ما به عکسی که از او در اتاق خودمان داشتیم نگاه می‌کردیم. در این فکر بودیم که کی دنبال ما خواهد فرستاد. ما نمی‌توانستیم هر وقت دلمان می‌خواست نزد او برویم. برای اینکه دنیا مال بزرگتر هست و آدم مجبور است طبق میدان آنها عمل کند من به زودی تن به غذا دادم این راه را آسان تر دیدم اما سیدنی جور دیگری بود او همیشه حاضر بود که به امید پیروزی دست به آزمایشی بزند با اینکه هر بار می‌دانست که با شکست روبرو خواهد شد سیدنی میگفت وقتی بزرگ شدم هنرپیشه خانم شد مقصودش را میفهمیدم. او میخواست این دنیای رویایی را یک روز برای خود ایجاد کند. از این رو صبر نمیکرد که او را به این دنیا دعوت کند. من یک دقیقه درباره آن فکر کردم کار خوبی به نظر می آمد من هم گفتم من هم هنر پیش خواهم شد.